برو تین چی میزنی؟ پشت بازضای به هم زدی ها یه برند فرانسوی تازه اومد اسم ریقه چرا سیکس تک خودتا نمیگی آب معوارم کهابگرریش های اون دکتره خوب بود آره دکتر مارتیک خیلی خوش سلیقه است تازه قولدادی دفعه دیگه برام کول بذاره یه چند سانتی هم بلندترم کنه مدررس مطببش بده وسه افتادگیبلکام یه سر برم سراغه آره تو کمی هم شمارش ازم گرفت. سلیمون اونجا را عجب دافه ردیم بیه ده باید کفتم بسید من را اینجا نگو دیگه دافرونه برونه همون ببسولی باشه حالا ویل کنین حرف را دافو بچست دافو بچست آنهای چشه چشه آره خفنجیه طبیعی یا پلاستیکی به نظره این عروسک با همچنه دماغ غلمی بعید میدونم طبیعی باشه خیلی کن دماغو و تو کار چشم ای جون چه چه شای تنگ دلبری چه شاش عمرن طبیب چه لنز بابا اصلا شاد اگه تبیه نبود من پیشمون مارتیک کوشام علاقی برا امنه باشه قبوله قبوله برو برو جون سوشی بدم خدمت تو نه هانی من سوشی دوست ندارم آخه یاخه دیگه چی ها دوست نداری پیشی <تصفيق> بگم نه نمیخواد بگم <تصفيق> چه چشای آبی قشنگی داری؟ چشای خودته یا لنزه؟ مرسی همه به میگم چشای خودمه منم همینو میگم آنه بچه اینجا یه تایلند به اون چشای بادونید نه آخه میدونی تازه چربی تذبیخ کنم زیر چشام ببین اینجا اینا هنوز پفش نقابیده ببینم بازو تو چه تطویب با داری آره اجدای سارو استراکوسه تو مجموع جزایر کمور نماد و عشقه میگم شنا بلدی نه آخه من عذاب میترسم چه تو مگه؟ نگران نباش با این بادکنک اگه بخوایم غرق نمیشی بیتر چی میگی با مهمش کرده نبی جانت و رنگ مهم طبیعیه مثل چشن آره خوده <تصفيق> خب حالا نمیخواد خالی ببندی باییه چقدر دان شدم بریم یه چیزی بزنیم برخصیم آره بیشی جون خوب گفتی <تصمت> یه چیزی دارم بهش میگن اورنجه ون میزنی میری بهشت نوت به نوت موسیقی رو میتونی ببینی تا خود ساب میرخصو نده <تصمت> نه نه اینطوری نه منظورم یه نوشیدنی لایت بود یه چیزی مثل رد بود <تصمت> بیخیل شیشی جون لوس نشوریت نمیاد یه اینو برا بالا آخه من آخه باشه حالا امتحان میکنم یه ها بیایی نوشیدن هم بوشت بخوا میرسی چه خوبه چی بود وای من چرا اینجوری میشم آخ چه تون بود وای همچه ده... یه <تصفح> بیا بری بلخصیم چیش یه خدا چیشه دی چیشتونه دم دماخت کو وای نه خداییو هی بیه دکتره گفتا خوب بخیش کنه ها وای ها به رو برفت که ایه کجا ای، ای، رفتی؟ این چی بود دیگه بابا داغو شکرت خدا بیخ گوشمون رد شد میگن تو از نزدیک ندیدی باور نکنه همینه دیگه بابی بابی ای بابا بها دار آن چیه بابا چی شده <تصفيق> <تصفيق> دیدی شیشه دختره به بگه ات بود <تصفيق> تلنگش در رفت افتاد کفه دستش آره خدا لما بگم سلی اینا واقعی بود که دیدیم یا اثر این اورنج هیونه بود <laughs> نه بابا فکر کنم واقعی بود <تصفح roll> سلیجو شهر تو باختیدی می گفتم دختر بلاسیکیه که, که گوشتو اولاغی عمل میکنی ورش کن بابا حالا هایی بودیم یه چیزی گفتیم نه به جیون خودم نمیشه ببینیر اصلا فردا صبح خودم به دکتر مارتیک زنی میزنم بله؟ برات وقت میگیرم <تصفح> چه تک بشی تو با گوشای اولاغی جیونم ببین حال <تصفح> نداری برگشت برگشت میزنید عزیزم پیشی خوش کرد دم تو دوباره کار گذاشتی شدی. نیی. ما بچه که ببینم یکی چی می‌ری. ده. چیشو؟ این مگه اون نروت؟ نمیدونم خودش بودم ما ولایم این همه هم شدیم شبی هم شدم نمیدونم. بیا بریم بیا بریم مراسم ما ولایش